این داستان سه پسر خیات روزی روزگاری خیاتی بود که سه پسر داشت. بوزی هم داشت که شیر پسرانش را فراهم می کرد. بوزی که اینقدر اهمیت داشت باید حسابی هم علوفه میخورد برای همین بچه های خیات به نوبت اونو برای چریدن به کور راه های اطراف و کنار جاده ها می باردن. روزی پسر بزرگتر بوزو به حیات کلیسایی برد که علفهایت سبز و ای داشت. بوز این طرف و اون طرف پرید و سرگرم چریدن شد. شب موقع برگشتن پسر از بوزی پرسید خوب چریدی؟ بوز در جواب گفت اونقدر خوردم که دیگه جای خوردن ندارم. سر تناب و گرفت و بوزو به خونه برد. و توی استبل بستش وقتی پدر پسرش رو پرسید آیا خوب مراقب بازی بودی؟ پسر جواب داد بله پدر اونقدر غذا خورد که دیگه جای خوردن نداشت پدر برای اینکه مطمئن بشه خودش به استبل رفت و در حالی که بوزی و نوازش میکرد پرسید خب خانم بوزه امروز به اندازه کافی غذا خوردی؟ بوز جواب داد تمام روز توی حیات این طرف و اون طرف پریدم و بازی کردم ولی علفی نبود که بخورم. حیات فریاد زد مگه ممکنه و از استبل بیرون پرید. پسر بزرگش رو صدا زد و گفت تو به من دروغ گفتی؟ تو گفتی که بزی هر هرچی دلش خاص خورد اما خودش میگه که منو گرسنه نگه داشت. پدر با عصبانیت پسرش را از خونه بیرون کرد. روز بعد نوبت پسر وسطی بود که بوزو برای چرا ببره. اون تونست باقی پر از علف تازه براش پیدا کنه. بوزی اون چنان با اشتهاب میخورد که حتی یه دونه علف هم توی باغ باقی نزاشت. شب موقعی برگشتن پسر وسطی از بز پرسید که به اندازه کافی علف خورده یا نه بوزی هم جواب داد اونقدر خوردم که دیگه جای خوردن ندارم. پسرک بزو به خونه آورد و به استبل بستش. وقتی پسر دومی دو وارد خونه شد، پدرش پرسید: خب امروز مراقب بز بودی که خوب علف بخوره؟ پسرک جواب داد: بله، اونقدر خورد که دیگه جای خوردن نداشت. خیاط که ماجرای شب قبل رو به یاد به استبل رفت و از بزی پرسید که غذا خوب خورده یا نه. بوز جواب داد، چطور میتونم به اون هم تو جایی که هیچ علفی نداره، حتی یه دونه. ای پسر دروغگو، حیوان به این مفیدی رو گرسنه نگه داشتی؟ داستان برای پسر سه هم اتفاق افتاد. خیاط فریاد کشون گفت، چه پسرایی دارم، یکی از یکی بدتر. اونم نباید تو خونه بمونه. بعدم پسر کوچکترو رو هم از خونه بیرون کرد. دیگه در خونه فقط خیاط مونده بود و بازش. صبح روز بعد خیاط خودش به استاب رفت و به بز گفت، بیا ای حیبون خوب و مفید. امروز خودم تو رو برای چرا میبرم. برم. اون ب در همون نزدیکی ها به جایی برد که دورش پرچین داشت و علف سبز و تردی در اون رویده بود. علفی که به دهن بازی باید چیرین بیاد. خیاط به بازی گفت، این دفعه تا دلت میخواد از این الفا بخور تا سیر بشی. بعد بز اونجا رها کرد تا شب شد. شب که شد از بز پرسید: "خانوم بزی، هر چقدر خواستی علف خوردی؟" بز جواب داد: "از هایی که بهترین بود، اونقدر خوردم که دیگه جای خوردن ندارم." اون بوذا به خونه برد و در استبل بست. هنوز از در استبل بیرون نیمده بود که برگشت و بار دیگه ازش پرسید آیا از خرد و خوراک امروزت راضی بودی؟ ولی در نهایت تعجب دید که بوزی میگه چطور میتونم راضی باشم در حالی که هیچ علفی نخوردم؟ حتی یه دونه حیات از شنیدن این جواب از تعجب شاخ در آورده بود اون که بدون درنگ فهمیده بود با بی انصافی پسراشو تنبیه کرده و از خونه بیرونشون کرده فریاد زد ای حیوان نمک نشناس کمترین تنبیه برای تو اینه که مثل بچه از اینجا بیرونت کنم اما نه سبکم ببینم بهتره روی تو علامتی بذارم که دیگه جرعت نکنی پیش هیچ خیات شرافتمندی بری خیات قیچی و برداشت هشمایه سر بوز و تراشید و اونو مثل کف دست صاف کرد. بعد چند تا ضربه محکم به حیوان زد طوری که بوز از شدت درد با تمام قدرت از اونجا فرار کرد. دیگه خیاط تو خونه تنها مونده بود. چقدر دلش میخواست که بچه هاش تو خونه بودن. اون نمیدونست چطور اونا رو پیدا کنه. سالها گذشت و از بچه ها خبری نشد. این خیاط تندخور و همین جای داستان تنها میذاریم و سراغ پسرش میریم. پسر بزرگتر نزه نجار رفت و شاگرده شد. اون خیلی زود در کار نجاری مهارت پیدا کرد و استادش کاملا ازش راضی بود. اون وقتا رسم بود که صاحبای حرفه به سفر میرفتند تا در شاخه گوناگون کار خودشون معلومات بیشتری کسب کنند. پسر بزرگ خیاتم میخواست به سفر بره. استادش بهش یه میز هدیه داد. میز کوچیکی بود و در ظاهر چندان قابل توجه نبود. جنسشم از چوب معمولی بود. ولی این میز یه خاصیت داشت. اگه کسی به اون میگفت ای میز غذا رو آماده کن فورا اطاعت میکرد. رومیزی سفید رنگی روش پهن میشد و بشقاب و قاشق لیوان و انواع خوردنی و نوشیدنی روش پر میشد شاگرد جوون فکر کرد که با چنین میزی دیگه غمی نداره اون بدون اینکه نگران پیدا کردن مسافرخونه باشه سفرش سفرشو آغاز کرد آخه از بابت غذا خیالش راحت بود براش فرق نداشت که از کجا میگذره، از وسط جنگل یا از بین چمنزار. اون فقط باید میزو از پشت خودش به زمین میزاشت و میگفت ای میز غذا رو آماده کن. بعد همه جور غذا روی میز آماده میشد. مدتی که از سفرش گذشت با این تصور که بعد از گذشت این همه سال لابد عصبانیت پدرش فروکش کرده به فکرش رسید که نزد پدرش بره. جوون فکر کرد با میزی که در اختیار داره حتما پدرش با خوشرویی ازش استقبال میکنه به این ترتیب به طرف خونش براه افتاد شب به یه خونه کنار جاده رسید که پر از مهمون بود صاحب مسافرخونه سرش خیلی شلوغ بود و از جوون خواست که بیاد با خودش سری میز غذا بخوره نجار جوون به غذای ناچیزی که جلوش گذاشته شده بود نگاه کرد و گفت فکر میکنی من با این غذای ناچیز سیر میشم؟ صاحب خونه عزیز کمی صبر کن بهتر تو مهمون من باشی. میزبان خندید و فکر کرد مسافر سر به سرش میذاره. ولی وقتی دید تازه وارد میزش رو روی زمین گذاشت و گفت ای میز غذا رو آماده کن و اون وقت انواع قضاها روی میز حاضر شد از تعجب شاخ در آورد در یک چشم به هم زدن غذاهای عالی بهتر از غذاهایی که صاحب مسافرخونه میتونست فراهم کنه روی میز چیده شد. بوگ اشتهاور اون غذاها به مشام مهمونات دیگه رسید و اونا هم به طرف میز صاحب مهمونخونه اومدن و ببینن چه کسی سور میده. نجار جوان بهشون گفت دوستان بفرمایید بشینین. اونها وقتی دیدن که نجار جوون با قیافه جدی اونا رو دعوت میکنه، تردید نکردن و نشستن دور میز و بی با شروع کردن به خوردن. وقتی دیدن به محض اینکه بشقاب خالی میشه، بشقاب دیگه ای جای اونو میگیره، تعجب اونا دو چندان شد. صاحب مهمونخونه بی بیسر و صدا همه چیزو زیر نظر گرفته بود. اون فکر میکرد اگه در مهموخونش چنین میزی داشت چه ثروتی به هم میزد. نجار و مهمونات تا دیر وقت خوردن و نوشیدند. سرانجام مهمونا به اتاقهاشون رفتن و نجار جوونم میزشو جمع کرد و کنار دیوار گذاشت. افکار بد صاحب آرامش و ازش رو بود و نمیزاشت خواب به چشماش بیاد. میلی شدید در اون به وجود اومده بود که اون میز حیرت انگیز و تصاحب کنه. بالاخره یادش اومد که در انبار میزی کهنه شبیه همین میز داره بلند شد و به انبار رفت و اونو برداشت بعد آهسته وارد اتاق جوان نجار شد. جوان به خوابی عمیق فرو رفته بود صاحب مهمون خونه هم اون دوتا میز رو با همدیگه عوض کرد صبح روز بعد جوان حسابشو پرداخت و میزشو برداشت و براه افتاد. بیچار روحشم خبر نداشت که صاحب مسافرخونه چه بلایی سرش ورده. ظهر بود و جوان به خونش رسید. خیات پیر با خوشحالی زیاد ازش استقبال کرد و بعد پرسید خب پسرم تو این سالایی که ندیدمه چه کارایی کردی و چه چیزایی یاد گرفتی؟ اون جواب داد نجاری یاد گرفتم و تو کارم مهارت پیدا کردم. خیاط گفت: چه شغل خوبی! آفرین. تا حالا چقدر درآمد داشتی؟ پسر جوون گفت: بهترین چیزی که به دست آوردم این میز کوچیکه. خیاط میز و برداشت و گفت: این میز که کهنه و فرسوده است، نباید چندان با ارزش باشه. پسر در جواب گفت: ارزش اون به ظاهرش نیست. این میز قدرتی شگفتانگیز داره. وقتی که اونو روی زمین میذارم و دستور میدم که ای میز قضاها رو آماده کن، بیدرنگ، انوا و اقسام نوشابه ها و غذاهای خوشمزه با باشقاب و کارد و چنگال و قاشق روی اون میچینه. حالا شما برین همه دوستا و فامیلا رو دعوت کنین تا ببینن میز من چه قدرتی داره. حیات به دنبال دوستا و آشناهاش رفت و همه اونها رو به امید قضاهای خوب و خوشمزه اوورد. به جوون میز و وسط اتاق گذاشت و گفت ای میز غذا رو آماده کن ولی از غذا خبری نشد. چون اون میز قدرت جادویی نداشت و فرمان در اون تأثیری نمی کرد. بیچار جوون وقتی متوجه شد که فریب خورده و میزش میزشو عوض کردن، نزد مهمانان شرمنده شد. جبون حس می کرد که اونا فکر می که اون حقه زده و همه رو دست انداخته. فامیلا اونو مسخره کردند و در حالی که قرمی زدند به خونه های خودشون برگشتند تا چیزی بخورند. بعد از این ماجرای معیوس کننده و توعم با آبروریزی خیاط ریزی سراغ سوزن و انگشتونه خودش رفت و پسرم رفت پیشه نجار تا کار کنه. حالا بریم سراغ پسر دوم. اون رفت و شاگرد آسیابان شد. وقتی کارشو خوب یاد گرفت استادش بهش گفت تو در کارت مهارت پیدا کردی میخوام یه اولاق خارقلاده بهت هدیه کنم. از پیش باید بگم که اون نه میتونه گاری بکشه نه بار حمل کنه. پسر جوان گفت: پس کاری که ازش برمیاد چیه؟ استاد گفت: صبر کن. اگه به درد نمیخورد که اونو به عنوان هدیه بهت نمیدادم. پسر جوان گفت: اگه بار نمیکشه پس چطور میتونم از این الاغ استفاده کنم؟ ارباب گفت: این اولاق برای تو اشرفی میاره. کافی پارچه روی زمین پهن کنی الاق و به طرف اون پارچه هدایت کنی و بگی بریز. فوری اشرفی ها از دهان اون سرازیر میشن. پسر جوون گفت عجب هدیه شگفتانگیزی بعد در حالی که از تمیم قلب از آسیابان تشکر می کرد خداحافظی کرد و راه سفر رو در پیش گرفت. مدت زیادی نگذشت که پیبرد چه گوهره گرانبهایی در اختیارشه چون هر وقت به پول نیاز داشت پارچه جلوی او پهن میکرد و اشرفی میگرفت جوان بعد از اینکه به سرزمین های زیادی سفر کرد تصمیم گرفت به خونه پدریش برگرده اون با خودش گفت اگه با جیب پرپول به خونم برگردم عصبانیت پدرم فروکش میکنه و با مهربانی با من روبرو میشه با این تصمیم راه ده زادگاهش رو در پیش گرفت. اون پس از طی مسافتی طولانی به همون مسافرخونه رسید که میز برادرش توش بود. صاحب مسافرخونه میخواست الاق و به استبل ببره که پسر جوون مانع شد و گفت خواهش میکنم به خودتون زحمت ندین. من باید این اولاغ پیر رو خودم به اونجا ببرم و ببندم. صاحب مسافرخونه اول تعجب کرد. بعدم فکر کرد مهمونی که خودش میخواد رو ببنده حتما پولی در بساط نداره. ولی وقتی مسافر دستشو به جیب برد و دوتا اشرفی در آورد صاحب مسافرخونه فهمید اشتباه کرده و مشتریش آدم متمولیه. صاحب مسافرخونه که چشماش گرد شده بود با خودش گفت که بهتره بره و شام خوب و خوشمزهی براش درست کنه. و دوید و چه زودتر دستور بهترین غذاها رو داد آسیابان جوان بعد از شام سراغ صورت حساب گرفت صاحب مهمون خونه که آدمی بد جنس بود مبلغ بسیار گذافی ازش خواست جوان جیباش و گشت و دید که به اندازه کافی پول به همراه نداره بنابراین رو کرد به صاحب مسافرخونه و گفت صبر کن همین الان بقیه پولتو میارم او با عجله پارچه رو برداشت و بیرون رفت. صاحب مسافرخونه کنج کاف شد. اون دلش میخواست از کار جوان سردر بیاره. برای همین اونو تعقیب کرد و دید که وارد استبل شد و در را از پشت بست. مسافرخونهچی چی از سوراخ در پنهانی جوان رو می او اون دیدش که جوان پارچه رو, رو روی زمین پهن کرد، و رو روی پارچه برد و گفت بریز. در همون لحظه از دهان جانور بارونی از اشرفی بارید و روی پارچه ریخت. صاحب مسافرخونه با خودش گفت عجب سکه های تازه ضرب شده ای؟ چنین وسیله پولسازی چقدر ارزشمنده باید اونو تصاحب کنم. مرد جوان حسابشو پرداخت و رفت خوابید نیمه های شب صاحب مسافرخونه آهسته وارد استبل شد و پولساز و با یه الاغ معمولی عوض کرد. جوان روز بعد صبح زود بلند شد، رو باز کرد و بدون اینکه به فکرش خطور کنه چه حقوقی بهش زده شده، به راه افتاد. نزدیک ظهر بود که به خانه پدریش رسید. پدر از پسرش استقبال کرد. بعد پرسید خب پسرم در این سالها چه چیزایی یاد گرفتی؟ اون جواب داد من یه آسیابان شدم. پدر باز پرسید خب چه پاداشی به دست آوردی؟ گفت فقط یک الاق. پدر گفت ما که اینجا به اندازه کافی الاغ داریم اگه یه بز می آوردی مفیدتر بود. جوان در جواب گفت درسته پدر ولی این جونور معمولی نیست چون پول سازه. حالا هم بفرست دنبال فامیلا که بیان اینجا من به هر کدومشون انقدر پول بدم که ثروتمند بشن پدر گفت چه خبر خوبی اگه این رویا واقعیت داشته باشه من از شر سوزن زدن خلاص میشم اون با عجله رفت که فامیلاشو دعوت کنه همین که فامیلا دور هم جمع شدن جوون جای تمیزی کف و اتاق پیدا کرد و پارچه رو روی اون پهن کرد با صدای بلند فریاد زد حالا توجه کنید بعد رو کرد به حیوان و گفت بریز یک بار دیگر هم تکرار کرد اما حیوان از این حرفا سر در نمی برد بی حرکت سر جای خودش بایستاده بود برای آسیابان جوان بیچاره آبرو و حیثیتی باقی نموند اون تازه متوجه شد که رو دزدیدن و به جای اون یه اولاق دیگه به استبل بردن. جوون از همه فامیل عذرخواهی کرد و اونها بدون پول به خونه هاشون برگشتن. پدرش به همون کار دوخت و دوز برگشت و خودش هم تو همون نزدیکی در یک آسیابان مشغول کار شد. حالا بشنویده از برادر سومی. برادر سومی شاگرد یک خرات شد و چون حرفه دشواری رو انتخاب کرده بود سالهای شاگردیش طولانی تر بود. افراد خانواده براش نامه نوشتند و شهر دادند که چگونه با حقه های صاحب مسافرخونه از داشتن امکاناتی ارزشمند محروم شدند. بالاخره وقت مسافرت برادر کوچکتر فرا رسید. موقع خداحافظی استادکار یک کل پشتی بهش هدیه داد و گفت اینو به پاس زحماتی که کشیدی بهت هدیه میدم. تازیانهی هم توی این کل پشتیه. جوان گفت این کل پشتی خوب و به درد بخوره و من میتونم اونو به دوش بگیرم. ولی تازیانه دیگه برای چیه؟ کوله رو سنگین تر میکنه. استادش گفت، حالا برات توضیح میدم. اگه کسی در طول سفر برات درد سریجاد کنه، کافیه بگی تازیانه از کیف بیا بیرون. بلا فاصله تازیانه میاد بیرون میپره و اونا رو نابود میکنه. انقدر به سر اونا میکوبه تا خودت بگی دست نگهدار. ساری جوان وصف هدیه رو شنید از اربابش خداحافظی کرد و راه افتاد اون کم کم متوجه میشد که کوله پشتی ارزشیه. با باارزشیه انجام بعد از طی مسافت طولانی به همون مسافرخونه رسید جوان داخل رفت پشتش رو زمین گذاشت و شروع کرد به صحبت کردن از چیزهای عجیب و غریبی که در طول زندگی و سفر براش پیش اومده داستانو از اینجا شروع کرد برخی ها به میزی دست یافتند که وقتی به آنها فرمان میدهند انواع غذاها برایشان فراهم می شود. دیگران صاحب علاقی شدند که از دهانش اشرفی می ریزد. ولی این چیزها و چیزهای شگفتانگیز دیگری که من در طول سالیان سال در تمام دنیا دیده پیش از آنچه من در کول پشتی خود دارم اهمیت و ارزشی ندارد. صاحب مسافرخونه گوشهاش و تیز کرد و با خودش گفت به به چه چیزی ممکنه توی این کوله پشتی باشه لابد تلا یا جواهرات قیمتیه من باید هر طور شده اونا رو به چنگ بیارم شب که شد مرد جوان روی نیمکتی دراز کشید و کیفشو به جای بالش زیر سرش گذاشت صاحب مسافرخونه در اتاق مجاور کشیک میکشید تا جوان به خواب بره بلاخره دید که جوان به خواب عمیق فرو رفته. اون موقع پنهانی به طرف نیمکتش رفت و آهسته کیف رو از زیر سرش کشید. تا با کیفی دیگه عوض کنه. قافل از اینکه جوون خودشو به خواب زده بود و زیر چشمی حرکات اونا زیر نظر گرفته بود. درست در همین لحظه بود که کار رو تموم کرد. جوان داد کشید تا زیانه از کیف بیرون بیا. در یک چشم به هم زدن تازیانه روی شونه مرد فریبکار پرید و اون چنان اونو زیر ضربه های خودش گرفت که تمام لباس از هم شکافت. صاحب مسافرخونه با گریه و فریاد خواست که اونو ببخشه. اما هرقدر صداش بلندتر میشد، ضربات تازیانه هم شدیدتر میشد. دست آخر مسافرخونه جی با تنی زخمی به زمین افتاد. در این موقع جوون به تازیانه دستور داد که نگه داره. بعد رو کرد به صاحب مسافرخونه و گفت بیهوده تلاش نکن به تو رحم نمیکنه. بگو ببینم میز و اون اولاغی که اشرفی از ذهنش بیرون میاد کجاست؟ همی الان برو اونها رو بیار. صاحب مسافرخونه که نمیتونست درست حرف بزنه گفت همه چیزو پس میدم فقط دستور بده که این تازیانه به جای اولش برگرده. جوان گفت باشه. اگر ریگی به کفشت نیست و تنت نمیخواره به قول خودت عمل کن و هرچی زودتر اونها رو بیار. جوون بعد از گفتن این شرط به تازیانه دستور داد به داخل کل پشتی برگرده. صاحب مسافرخونه نفس راحتی کشید و صبح در حالی که هنوز بدنش از کتک ها درد میکرد اون چرا که دوزیده بود آورد و به صاحب کل پشتی داد. جبون بعد از اینکه اموال برادرش رو گرفت، راهی منزل پدرش شد. همه با شادمانی ازش استقبال کردند. خیاط درباره حرفش پرسید و سوال کرد و اونم گفت من از کارم فقط یه کوله پشتی دارم که تازیانه درونه همین همینو بس. پدر جواب داد: تازیانه چه ارزشی داره؟ از همین چوبای جنگلم هم میشه تازیانه درست کرد. پسر گفت: نه. این یه چوب یا تازیانه معمولی نیست کافی دستور بدم از کیف بیرون میاد و هر کسی که منو عذیت کرده باشه عذیتش میکنه حالا دنبال دوستا و فامیلا بفرست نه تنها غذای مفصلی به اونها بدیم جیبهاشون هم پر از اشرفی کنیم با اون تجربیات تلخ گذشته باور کردن این حرفا برای خیاط کار آسونی نبود با وجود این به دنبال دوستا و فامیلا رفت و اونها رو به خونش دعوت کرد. بعد خرات جوان پارچه کف و اتاق پهن کرد و الاغ رو روی اون برد و گفت خب برادر عزیز اون چرا که باید بگی بگو. آسیابان جوانم با صدای بلند گفت بریز. با گفتن این کلمه سکه های اشرفی مثل قطرات باران فرو ریخت. و همه به اندازه کافی اشرافی جمع کردند بعد میز رو آوردند و برادر کوچکتر به برادر بزرگتر گفت برادر عزیز حالا نوبت توه که صحبت کنی نجار جوان با صدایی رسا گفت میز غذا رو آماده کن در یک چشم به هم زدن لذیزترین غذاها و نوشابه هایی که برای یک جشن کافی بود روی اون چیده شد و همه مهمان ها خوردند و نوشیدن و ازش لذت بردند مهمان ها آنقدر گرم سرور و شادی بودند که نفهمیدند کی صبح شد بعد از اون خیاط سوزن و نخ و انگشتونه و بقیه وسایل خیاطیش رو تو گنجه انداخت و با پسر خود زندگی تازهی رو شروع کردند اما در تمام این مدت بزی که باعث شد خیات پسرش از خونه بیرون کنه کجا بود؟ براتون میگم. اون که از سر تاس و بدون موش خجالت میکشید خودش رو به لانه روباهی رسوند و قصد داشت اونجا بمونه که دوباره مو در بیاره. وقتی روباه به لانش برگشت در تاریکی لونه یه جفت چشم دید که درخششی مثل آتیش داشت. روباه آنچنان وحشت برش داشت که دوتا پا داشت دوتا پای دیگه هم غرض کرد و رفت. همونطور که فرار میکرد خیرس اونو دید و فریاد زد مگه چه اتفاقی افتاده که اینطور وحشت زده میدی؟ روباه گفت حیوانه ترسناکی توی لونمه اون با چشمایی که ازش آتیش میباره به من خیره شده بود. خرس با لحنی جسورانه گفت کاری نداره همین الان اونو بیرون میکنیم. اون دوتا به سمت لانه روباه رفتن خرس نگاهی به درون لانه انداخت تا با اون یه جفت چشم روبرو شد که انگار از اونها آتیش میبارید مثل روباه بدون هیچ کشمکشی پا به فرار گذاشت زنبوری خرسو که داشت از ترس می دید و ازش پرسید پدر بزرگ چی شده که انقدر قیافه بحشت به خودت گرفتی؟ این همه ترس از کجاست؟ خرس گفت حرف زدن آسونه. اگه تو همون حیولا رو ببینی از شوخوشنگی حرف نمیزنی زنبور گفت آقا خرسه خیلی دلم برات میسوزه میدونم که در برابرت موجود ضعیف و کوچیکی هم با وجود این فکر کنم که در این کار بهت میتونم کمک کنم زنبور پرواز کرد درست روی سر بوزی نشست و نیشی دردناک بهش فرو کرد طوری که بز، با ترس و وحشت بابع پا به فرار گذاشت و بچه ها از اون زمان تا کنون کسی از اون بازی خبر نداره سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی